من خوش میروی در سر و پا میرمَت خوش خورامان شو که پیش قد رعنا میرمَت گفته بودی کی به میری پیش من تعجیل چیست خوش تقاضا میکنی پیش تقاضا میرمَت عاشق و مخمور و محجورم بوت ساقی کجاست گو که بخرامت که پیش سرو بالا میرمد آنکه عمری شد کتابی مارم از سودای او گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمد گفته‌ی لعل لبم هم درد بخشد هم دوا گَه پیش درد و گَه پیش مداوا میرمَد خوش خرامان میروی چشم بد از روی تو دور دارم اندر سر خیال آنکه در پا میرمَد گرچه جای حافظان در خلوت وصل تو نیست ای همه جای تو خوش پیش همه جا میرمَد